jira alu ara sovi ma tõrral statot midan چه سرش هم دونیم واسه هر دو جنس داریم ایچینی یا امیدواری دو باشن برسن هرچی خدا بخواد محتو بو میشنسیم همه خودشون رو میشنسن ام That in my troop Chay Cutter دومی هستی که فکر می‌کنی قلب این شکلیه پارچه‌ایه میشه دوختش شکافتش باز دوختم من از که به ناحق میس زنه تو دعادت کنه من که تو متن. از خونه باباش بدزدیدی نه اصلا اینجوری که فکر می‌کنی نیست من ولی جلوشو نگرفتی پشت دستش نزدی زدی بابا سبت چه واسه آن با سبت چه بده آسه با سبت بده یعنی ناشکری یعنی تو برام بسی بس بودم که وقتی به آراز گفتم برادری بینمون تموم هم وقتی اصابه اون روش بستم وقتی تو میدون ما پایو رحمه نایه اشخاله واجعه و میبه ها و خورده میخوا رایش کردم بره به خودم گفتم دبون میاری دبون میاری چه چون مهدوبو داری چون مهدوبو داری ون بیارم چیکار کنم اون قبلیه بشی؟ خونه با خون میشورن چاواش میشورن کی نه رو با کی نمیشن؟ میشورن؟ بینه اتخاط داری نارو بینه حرف اتخاط دارم با کینه من حنیفو شور بزار کنار دادشانه آرازم دادشت بود اون خیانت کرد دلم لرزید هرگی دل زن تو به لرزونه خیانت کرده بهت کرده میدونی وقتی چیه می خوم تو تمیز کنم زندگی تو تمیز کن این زندگی با پول مردم ساخته شده هررکم اومده حرف بزن اعتراض کنه هنیفو انداختی جلو که بزن بکشلت و پا کن درسته آره درسته پس خونه رو تمیز کن از مال غیر تو رو تو تمیز کنه از آدم غیر، آدم شر، آدم ضعیف کش سنت حامله بود. تو ضعیف ترین شکل ممکنش بود. جسمش، روحش حامله بود و اومد تهدید کرد زن تو. زنده اومد خونه بابای من خاستگاری. از خونه بابام تقریبا منو دزید آورد تو این قفس طلایی. کی گفته پول از چشم روشن تره؟ چشمم داره کور میشه از پولت. کجا به دنیا بیاد تو خونه کریم بستان آره این خونه کریمه کریم که حلال کردن هم تو صدونگ حجرش نشسته پس دورو براتم حلال کن هنیف سالمه. حرومه بالو پر دادم بذاره هنیف برادرمه که نمیتونم بذارم کنار آرازو گذاشتی قبلا اینو گفتی بازم میگم نمیتونم من نمیتونم نمیتونم کیه؟ چه خبرته؟ بلای جونت نصبتو هم ولی بلای جونت گنده سیویل کنه <تصفح> یا بیرون یا بیرون هایی که فقط من خانوم و مردی باست نموشو ببینم بیا چی ور بر, بر میکنی چی شده؟ چلی؟ تو کی بچه؟ اون یکی در امتحان کن، در پارکینگ گفتم تو کی؟ باداشه من نیجه خانم باداشه هر کوفتی کستی باش درو چی کار کردی؟ همین دیگه، موقعیت داری پول داری فکر کردی، بیتونی به هر کی بگی کوفت دره <تصفيق> خونت شروع کردم چون خونه خواهرم ریختی به هم اون به اون سیبیل گفتی طلاقش بده <تصفيق> میدونی آوه چیه چه ها نه نمیدونی میدونی مزلی ضعیف بودن چیه نه نمیدونی میدونی مزلوم بودن چه حسی داره نه نمیدونی میدونی ظالم بودن چه حسی داره آره اینو خوب میدونی وقتی فکر و فامیل امو خاله میشینن به قضاوت کردن وقتی میگن سر اولی رو خورد سر و به دوبوم که ولشه تو خیابونا انقدر حرف شنید که دو سال نشده شوهرش مرده اینو از کجا گیر گیراورده که خونه داره، حجره داره، کوف داره، درد داره، سهرمار داره آه. ما داغ دیدیم حرف شنیدیم چادم هممسال تو نقش. اون هم نفتییل پاپه یا آب جیم شد آب جیم گفت نه من شاهد. انقدر رفت اومد که گفت باشه؟ فقط شر, فقط حلال فقط ازدواج اهل ازدواج نبود بعد از اون خدا که دستش از دنیا بود. از خونت شروع کردم چون خونه خونتو میریزم به هم تونتون میام صداغت که یه وقت دلت برام تاینش <تصفيق> تو بردیم خدا مهربونه ظلمه ای که می کنی بایی بچمو جا. از خونم شروع کرده از خونش شروع میکنم پیتر بنزین داری؟ هان؟ ها هان یعنی چی؟ خودتو جمعجور کن به خونه دارش شبیخون زده به خونش شبیخون میزنی شبیخون یا آتیش؟ فرقش چیه؟ فرق نمیدی بری دو دوتا خون داشت بوی چی میاد؟ بوی چی میاد؟ بعد آراز جدایی از حنیف خیلی خوب آدرس و پیته بنزین از تو آتیش با من از من بیشتر می کنید پیته بنزین و آدرس رو آتیش به خودم چون تو رحمت بیشتره؟ دیدم آشد می شن ندیدم چجوری عشق آتیش می زنن. kamu zennesin biz seni ha ha chi khortcherdi khalif chi khortcherdi Ho, ho, ho. آقا شلوله کرد و رفت پرسیدن کجا میری گفتم میرم یه جایی که سر نخواستنم نخ دعوا نباشه jaro narazam sob o mad baba baba harfesh shod va sham man ye chi bech goftan az khone rafte birun har chi zang mizadam gooshish khamosh هم خور بیا بو ها siombra mei situci shale mei kei ham khisai mei Si raza Si bala az bir perhan to Sõra balet bi roza toham roze, sõra balet bi ja rüašbi <gülüyor> دیداست تاخ دیده است. بنا شد تو از دو ماهن پارسا تو دریا شد وقتی یکی تو دریا ق میشه دریا گشتنشه باز اوناش ن میریزن تو دریا تا دریا سیرشه و عزیزشون بهشون برگردیم این دریا سیرمونی نداره کارگر نمیخواد. برژی خودم و مادرم من به زور درمیارم بشین تا برژه شوستد بیارم پول نمیخوام یه جا باشه بخوام، یه چیزی باشه بخورم. میخوام یه جا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 مهرا من از پس خودم بر باشین. بشین. بعد آبجی اینجوری عین مردا نشستی. دانش سن ما میدونی غیرت چیه؟ غیرت ساختونه کشیدن نیست. غیرت دل خواهرتون نلرزوندن. همیشه میری در خونه مردم رو جوش میدوی اونم هم میشن با پیت نفس میان خونه مردم. مردم. بگو برادر شوارت بگو شوهرت هنیف ناخلطه است فقط گرفتار علاقه به برادرش با منم گرفتار علاقم به تو آقای گرفتار گرفتارترم نکن براد چه فده چه من خودم حق هنیفو میذارم که دستش اونتا نباشه آخشون رو کشیدن منمکت قانون داره دیگه نه دارم هم دنبال حتم جل بش فقط دل من و مامان از تو منرزه که خوب نیست که بنرزه برو دوش برو سروزی تو تمام کن برگرد خلاق میگیری ازش نگیر التماس میکنم نگیر تو دستت موندن آب جین چه حرفیه رو چشم موندی تو چشم موندی اه. اگه میگم نگیر به خاطر اینه که اون پیت نفت و چاوش پر کرد داد دست حنیف که برو آتیش بزن به قول خودتون خرابه داداششه منو باید بیشتر از داداشش میخواست آفا حرفیه میزنی اگه بگه یکی مهره و بیشتر از من بخواست چی جوابشو میدی؟ آه. نه خب بگو چی میگی بهش بگم هرکی سر خودش. الان هم میخوام سواره اوتوبیس شدن تو ببینم بینم و بعدش هم دارم دامنه پنها بچه هم اون تو خطر نکن برم آب جی. تو منو خوب میشناسی یا من اونجا دووم نمیارم فکرم اینجاست ذهنم اینجاست پیش تو پیش بچه هست نکن برم آب اتوبوس. نگه دار پیاده میشم اگه این تاکسیه گفتم پیاده میشم نگه دار. پسرم همینجه تو ماشین ببون خب درم قفت میکنم باشه باشه هنیف کلید داره کاشکی آراز باشه با هنیف کار داره. بفرماییت بیا تو من نیجا زنشه چی؟ زنشه؟ یعنی چی زنشه؟ لابدونم بچهشه دیگه کجا؟ بایستو ببینم چی میگه این؟ زن بچهشی؟ رفتم میدون پیش نبود الان کجا باید پیداش کنیم چی شده؟ دیشتب آقا داشته بچم و زنده زنده تو آتیش کباب می کرده طبق فرمایش فرمانش خان داداشش برادرام داره دنبالش میگرده زندانیش میکنم به خدا زندانی شد اصلاً گیر نشده صدا تو گلو انداختی حنیف حنیف کجاست حنیف کجا پنیس پنیس پنیس حنیف کجاست حنیف اینجاست پنیس اینجاست خانوم دیگه کجاست پس ا <صفيق> آها نه همه تو نمیشنسم شما منی نمیشنسید شناس یا ناشناس الان با کفش دو اتاقه فرما تو کشی تو که گفتی همی کسیشون نشنسی تو کشی زنش نیست میگم نیست از آخر شروع کردی گفتی زن نشی. از کواب شدن بچم شروع کردم کجاست؟ <تصفيق> توه والا تاله همه جم بودیم و تو کف گم شدن آراز بودی از این به بعد هنیف هم باید گم شده آمون اضافه کنیم توه؟ هنیف آشه و تو بد بچه تو آتیش بزنه؟ یکم دیر رسیده بودم زده بود کبابش کرده بود به دستور خاندادشش اومده بود خونم اون بزنه. من اگه میفهمیدم داداشم زن داره بچه داره بچه اون نیست اه آها پس خانوم بچه داره و داداش عذاب ما رو بوریش زده آتفه ما دا تا زنیم اگه راجبه هم دیگه خوب حرف نزنیم از مردا چه توقعی داریم داداشت کجاست الان زندان برای داداش من و اون بهترین و امترین جاست فقط بگو کجاست خانوم داداشم از دستم فرار کرده اگه الان بره سراغ چاوش اگه اگر الان بخواد بره نففریزه تو زندگیشو تلافی کنه چی غلط کرده زند داداشم حامل است خیلی خب ما باید جمعشون کنیم دیگه حنیفا بندازی زندان جمع میشه منیجه بی خود بی های برجی نیست این روزها رو ببینی این از این ما از شابوش و از حنیف اون از آراز خانده این میدونی مگه رو زخم میشینه نه. فقط تو میدونی دایی ای. این حرفا آراز میشه. این حرفا حنیف میشه. اگه درستم همه ی دونیارم دو درمی کن مثل کوه بشتشوه میستدم حق و باطر میکردم امادم حنیف و بدم بدن با تو خونم باید کنم چه خوش برین تو این اگه میخوای راز حرف بزنی بزن دروغ بگی نمانده کاش خواهم برم بیا بخوام بیا از من بید برو دمال آراز رو بداش وقتشون کن بهم وقت تمام چاووش وقت چی وقت پسر خلط بودن حاج بدری تنها می مانم میدونم می با تو آرامم بیترسن تنها تنها میمانم آشغتر زخمیتر قرار چون آتش در زیر خاکست آشفتم، آشفتم زخمش بردا دیدم آشفتم، آشفتم چون اجرا